بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین <تصفيق> و صلی علی محمد و علیه قاهرین الحمد لله یک قسمت از مباحث عمده تجوید تمام شد گفته بودیم که تجوید در کل تا بحث مهم داره یک بحث مخارج حروف هست دوون بحث صفات ذاتی حروف هست و سوم هم صفات عارضی حروف هست که معروف است به بخش اول به مخارج حروف بخش دوم به صفات حروف و بخش سوم به احکام حروف الحمدلله بحث مخارج حروف تمام شد حالا شروع می‌کنیم به بحث صفات حروف این صفات حروف بحثش چطوریست؟ اگر تا ببینیم می‌بینیم صفات جمع صفت هست و صفت چیست؟ الصفه هي کیفیت ترافق الحرف و تميزه عن غيره صفت عبارت از کیفیت و چگونگی یک حالتیست است که ترافق الحرف همراه حرف می باشد و تميزه عن غیره و همین صفت و کیفیاتی که همراه حرف و به حرفم تشخیص میده اون حرف رو از غیرش مثلا ما حرف سین و ص و این حروف را اگر بخوایم تشخیص بدیم و اون گونه ادا کنیم که طرف هم بفهمد با صفات ذاتی و شان هست که سین و صاد و تا میشن و اله همه سین گفته میشه، اینطوری به شکل راحت تر خب حالا وقتی ما فهمیدیم که صفت کارش اینه که همراه حرف است و سبب تشخیص حرف از حرف دیگر میشن اینا چطوری چند تایی هستن یبلغ و عدد و صفاتی سبع عشرت صفتن تعداد صفات به هبده صفت میرسد مقسمتن الى قسمین که این همه هبده تا هبده تا صفات تعدادش تقسیم میشه به دو قسم صفات لها ضد و صفات لا بد لها صفاتی که دارای ضد است متضاد دا مقابلش داره و صفات لا باید لها ولی صفات هم داریم که در مقابل خودش چیزی نداره پس حالا در کل صفات به دو دسته شروع هبده تا دو دسته صفات لها باید و صفات لا باید صفات متضاد در متباد دا و صفات غیر متباد صفاتی که دارای زید هست یک جهر مقابلش حمز دو شدت مقابلش رخواوه سه استغلاق مقابلش استفال چهار الاطباق مقابلش الانفتح پنج الاضلاق مقابلش الاسمات خب، حالا ما 5 تا صفت متضاد رو خواندیم که با زدش میشه ده تا پس بنابراین هفت دیگه مانده که این ده تا صفات پره بشه حالا این هفت را رو هم یاد کنیم قلقله، لین، انحراف، استقاله، تکریر، تفشی و صفیر این صفات غیر متضادن خب، ما حالا صفات که دارای زیده هست شروع میکنیم من صفات التی لها بدون صفاتی که زید داره الاستعلاء و ضده الاستفال استعلاء هست و ضد استعلاء استفال هست استعلاء چی, چی هست و چه گونه هست برای تعریف استعلاء باید دقت کنیم که یک مرتبه خود استعلا را میگیم یک دفعه تقریبا حالتش رو میگیم اگر حالتش را بگیم استعلا همون تفخیم هست پس در آلن واقع استعلا همون تفخیم هست ولی استفال همون ترقیق هست تفخیم یعنی پرخاندن ترقیق یعنی نازک خواندن اما زبان در حالت استعلاء چی میشه الاستعلاء ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف زبان خودش رو ارتفاع میده بالا میبره هنگامی که حرف رو ادا کنیم مثلا میگیم صالحین دیگه نه صالحین بلکه مستقیم ارتفاع است صالحین و استفال چیست انخفاض باللسان در نطق به زبان منخفض میشه و نازک میشه و همینطوری سرش میماند ادامش مثل مثل ال زیادی هست مثل ابیل به و کلمه ها و واجه های قرآنی خب حالا این استقلات چند حرفه استعادد و صه تا اهروفین عادد و تا هفت تا حرف هست رموزها خاصة ضغط قب قب خاصة ضغط قب يعني حرف خاء حرف صاد حرف ضاد حرف غين حرف قوي وحرف قاف وحرف زوي این هفت تا حرف حروف استعلاء و باقی حروف که 22 تا دیگه هست استفالند همین مقدار ان شاء کافی است بقیه رو هم خواهیم خواند وصلی الله علی سیدنا محمد و آله القاهرین